شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی محپیکر او سیر ندیدیم و برفت گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بر و به گردش نرسیدیم و برفت پس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم. و از پیش سوره اخلاص دمیدیم و برد عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد دیدی آخر که چون این عشوه خریدیم و برد شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن در گلستان و نچمیدیم و برد همچو حافظ هم شب ناله گزاری کردیم کی دریقا به وداعش نرسیدیم بر